دوستوی خوبم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ما در طی این دوره کل کتاب مقدس رو بررسی می کنیم. منظور از بررسی کل کتاب مقدس اینه که به شما دورنمایی از مقدمه و کل کتاب مقدس بدیم که بتونید یاد بگیرید که چطور تمامی وقایع این کتاب کنار هم قرار می و چگونه این حقایق شگفت انگیز رو در زندگی هامون به کار بگیریم خدا چیزی برای من و شما داره که امروز میخواد از کلامش یاد بگیریم بیاید قلبها و افکارمون رو باز کنیم تا ببینیم خدا میخواد امروز از کلامش چی یاد بگیریم این شما و این معلممون ضمن بررسیمون به یکی دیگر از انبیا عهد قدیم حجه نبی رسیدیم کتاب حجه نبی فقط دو باب کوتاه داره اما اون دو باب خیلی خلاصه شامل چهار مععزه بزرگ حجه هست به خلاصه اولین مععزه از چهار مععزه او گوش کنید؟ در روز اول ماه ششم از سال دوم داریوش پادشاه کلام خداوند به واسطه حجه نبی به زروبابل ابن شالتعیل والی یهودا و به یهوش ابن یهو صادق رئیس کهنه رسیده گفت یهوه و سبایو تکلم نموده چنین می فرماین. این قوم می وقت آمدن ما یعنی وقت بنا نمودن خانه خداوند نرسیده است پس کلام خداوند به واسطه ی حجه نبی نازل شده گفت آیا وقت شماست که شما در خانه‌های مسقف خود ساکن شوید و این خانه خراب بماند پس حال یهوه سبایوت چنین میگوید دل خود را به راههای خیش مشغول سازید بسیار کاشتهید و اندک حاصل می‌کنید میخورید اما سیر نمیشوید و می نوشید لکن سیراب نمی گردید رخت می اما گرم نمی شوید با مزد که مزد می گیرد مزدخیش را در کیسه سوراخدار می گذارد. پس جهوه سبایوت چنین می گوید. به کوه برآمده و چوب آورده خانه را بنا نمایید و خداوند می گوید از آن راضی شده جلال خواهم یافت منتظر بسیار بودید و اینک کم شد و چون آن را به خانه آوردید من بر آن دمیدم یهوه سبایوت میپرسد پرسد که سبب این چیست؟ سبب این است که خانه من خراب میماند و هر کدام از شما به خانه خیش می از این سبب آسمان ها به خاطر شما از شبنم بازداشته می شود و زمین از محصولش بازداشته می گردن. و من بر زمین و بر کوها و بر غله و اسیر انگور و روغن زیتون و بر هر آنچه زمین می و بر انسان و بهایم و تمامی مشقتهای دستها خوش سالی را خوندم وقتی که هجه نبی و دو نبی که بعد از او میآیند بررسی می کنیم یک زمینه تاریخی جدیدی داریم خیلی مهمه که دیدگاه های تاریخی رو در بررسی این سنبی مد نظر داشته باشیم این سنبی آخر هجه، زکریا و ملاکی به عنوان انبیاء پس از اسارت معروف هستند چون اونها بعد از تبعید قوم خدا به بابل اومدن ما بارها و بارها دیده ایم که تبعید قوم خدا به بابل در مطالعه کتاب‌های نبوتی عهد قدیم یک نقطه عطو مهم تاریخی هست. انبیا به دو دسته تقسیم شدند: انبیا قبل از اسارت و انبیا در اسارت یا بعد از اسارت. انبیایی که تا این مرحله بررسی کردیم همه قبل از اسارت بودند. بعضی از اونها همزمان با اسارت بودند. اما سنبی آخر انبیا بعد از اسارت هستند چون که اونها بعد از تبعید قوم خدا به بابل زندگی و مأزم می این نشون میده که اونها در ارتباط با بازگشت قوم خدا از بابل مأزم می کردند. وقتی که واقعیت تاریخی رو در کتابهای تاریخی بررسی می کردیم، دیدیم که به اسارت رفتن قوم خدا یک واقعه آنی نبود. اورشلیم سه بار سقوط کرد. قوم خدا در سه مرحله به بابل برده شدند، نه یک دفعه. در مورد بازگشت از اسارت هم همین مسئله صدق میکنه وقتی کتاب‌های تاریخی از را و نهمیار رو بررسی می‌کردیم، ملاحظه کردیم که قوم یهودا در یک نوبت از بابل باز نگشتند، بلکه در سه مقطع زمانی به کشورشون بازگشتند. اولین بازگشت در زمان حکومت زارو بابل و یهوشه کاهن اعظم بود. هدف از بازگشت اول با سازی معبد خدا بود. وقتی که مادها و ها بر امپراتوری بابل غلبه کردند، معجزه‌ای برای قوم خدا در پی داشت. به محض اینکه بابل سقوط کرد، کوروش کبیر امپراتور ماد و پارس به عنوان یکی از اولین اقداماتش فرمانی صادر کرد که طی اون گفته شده بود تمامی قوم یهودا که در اسارت بودند در صورت تمایل می به اورشلیم برگردن و معبدشون رو بازسازی کنن. کوروش کبیر منابع مالی بازگشت اونها و بازسازی معبدشون رو تأمین کرد. وقتی کتاب‌های عزرا و نهمی ها را بررسی می‌کردیم دیدیم که تمامی قوم نخواستند که برگردند بلکه کمی بیش از پنجاه هزار نفر برای بازسازی معبد، شهر و کشورشون به اورشلیم بازگشتند. هدف اصلی اولین بازگشت زیر نظر حکومت زروبابل و یهوشع کاهن اعظم بازسازی معبد سلیمان بود که مرکز پرستش مردم قوم یهودا بود. از را دومین بازگشت از اسارت بابل رو به اورشلیم رهبری کرد. هدف از دومین بازگشت که هفتاد سال پس از بازگشت اول صورت گرفت این بود که خدمت فعالی در معبدی که بازسازی شده بود راه بیاندازن سیزده سال بعد از اینکه دومین گروه به رهبری از را به کشورشون بازگشتن نه سومین گروه رو برای بازگشت رهبری کرد هدف از سومین بازگشت این بود که حسارهای اطراف معبد سلیمان و شهر اورشلیم بنا کنند. پس بازگشت از اسارت، شامل سه مرحله مجزا بود. موعظه حجه نبی و زکریا در زمان بازگشت اول تحت حکومت زروبابل و یهوشک کاهن اعظم بود. هر دو نبی، هجای و زکریا هدف اصلیشون از خدمت نبوتی بازسازی معبد بود. هجای و زکریا عملا درباره معبد موعظه می‌کردند. وقتی قوم یهودا برای بازسازی معبد برگشتند، اونها پنجاه هزار نفر آواره درمانده بودند. وقتی که بابلی ها بر قوم یهودا قلبه کردند، یهودا ارتشی شامل 600 هزار مرد جنگی داشتند. اونها قومی بالای دو میلیون نفر بودند و حالا اونها پنجاه هزار نفر تبعیدی خسته و درمانده هستند اونها احتمالاً شبیه پناهندگانی بودند که در اخبارهای امروزی میبینیم. اونها هیچ ارتشی نداشتند، ملیتی نداشتند، هویت و یا قومیتی نداشتند. هیچ قدرت سیاسی و نظامی نداشتند و کسان دیگری در یهودا و اورشلیم زندگی میکردند. کسانی که در اونجا زندگی میکردند از سرزمین های دیگری به اورشلیم و یهودا منتقل شده بودند همونطور که قوم یهودا به بابل منتقل شدند. این رسم ارتش های فاتح در آن زمان بود. کسانی که زمان بازگشت اول در اسرائیل زندگی میکردند، قوم های غیر یهودی بودند که عملا به اندازه سامری ها در ایام عیسی منفور بودند سامری ها به خاطر اینکه با یهودیان ازدواج کرده بودند مورد تنفر بودند چیزی که موسی ممنوع کرده بود اقوام غیر یهود کسانی را که از اسارت برگشته بودند دوست نداشتند اونها میدونستند چیزی که باعث شده بود قوم یهودا جنگ جویان ماهری بشن مذهب اونها بود و اگر اونها موفق میشدند معبدشون را بازسازی کنند. و مذهبشون رو از نو احیا کنند اونها باز میتونستند جنگندگان قدرتمندی بشن و تهدیدی برای اونها محسوب میشدن اقوام بیگانه به شدت با بازسازی معبد مخالفت میکردند وقتی باسازی معبد شروع شد اونها به قوم یهودا حمله کردند و اونها رو مورد آزار قرار دادند اقوام غیر یهود که مرتبا با کار باسازی معبد مخالفت میکردند تبعیدیان رو احاطه کرده بودند از این رو قوم یهودا دست از بازسازی معبد کشیدند اگرچه هدف از بازگشت موجزه اونها ها بازسازی معبد بود اما اونها شروع کردند به بازسازی خونه های خودشون و به مدت 15 سال معبد به صورت ای باقی ماند خداوند حجی و زکریای نبی رو برانگیخت تا در مورد این مانع و مشکل که نتیجه جفا و دشمنی مردمی بود که قوم یهودا رو دوست نداشتند فریاد بکشن و قوم یهودا رو بیدار کنند یکی از وظایف اصلی انبیا این بود که وقتی مانع و مشکلی بر سر راه کار خدا ایجاد میشد اونها در مورد اون مشکل زاری میکردند تا اینکه اون حل میشد و کار خدا از سر گرفته میشد حالا کار خدا در دوره با سازی معبد خدا بود که هنوز انجام نشده بود مردم خانه های خودشون رو می ساختن معموریت و پیام این دو نبی این بود که درباره اون موانع و مشکلات و آزار مردم ناله ها بکنند تا اینکه برطرف بشه و کار خدا بتونه پیش بره و با معبد ادامه پیدا کنه کتاب کوچک هجی فقط دو باب داره اما در این دو باب شما به شکلی کاملا خلاصه چهار معزه این نبی کوچک رو میبینید نگاهی به معزه اول او بندازیم آیاتی که در ابتدای این جلسه خوندیم اولین معزه از چهار معزه هجی بود پیام اولین معزه حجی دقیقا این بود اول خدا گفته شده که چکیده پیام مقدس همواره این دو کلمه بوده. اول خدا. اون یا در فرامین بوده یا به شکل داستان و شاید به طرق مختلف به صورت تمثیلی در داستانها و در مزامیر اومده، اما دائما چکیده اونها این دو کلمه بوده. اول خدا. بر اولویت هاتون تمرکز کنید. چیزی که حجه در معزش میگه اینه. شما فراموش کردید بر اولویت هاتون تمرکز کنید. حالا وقتش رسیده که بر اولویت هاتون تمرکز کنید. همه باید چیزی رو که من بهش هدف اولویت گفتم درک کنند. من دوست دارم که به اولویتهام به شکل یک هدف نگاه کنم. به یکی از اون صفحاتی که روی اون هدفی ترسیم شده فکر کنید. در وسط اون دایره سیاهی هست. بعد از اون یک دایره دیگه و یک دایره بعد از اون و تا ده تا دا دایره ادامه پیدا میکنه. همه ما باید در این باره فکر کنیم. اولویت های ما چی هستند؟ مرکز هدف اولویت های ما چیه؟ تعالیم زیادی در کتاب مقدس در این مورد هست به عنوان مثال در متا شش درست در وسط معزه سرکو ایسا تعلیم بزرگی از اولویت ها به ما میده ایسا در مورد مهمترین چیزها در زندگی ما بر حسب میزان اهمیت آنها صحبت میکنه و میگه نخست در پی پادشاهی خدا و ادالت او باشید و تمامی این چیزها برای شما محیا خواهد شد به عبارت دیگه ایسا میگه نقطه سیاه هدف اولویت های شما باید پادشاهی خدا باشه. اون یعنی حاکمیت قوانین خدا در قلب شما و چیزی که خدا نشون میده که درسته. تمامی اولویت های شما میتونه در پرتو اون مرکز باشه. اولین و مهمترین چیز در زندگی شما چیه؟ دومین، سومین و چهارمین اولویت بر مبنای این حقیقت که خدا مرکز اولویت های شماست چیه؟ خب این اساس اولین معزه هجعی بود. حجای این رو به زیبایی بیان کرده عبارت مورد علاقه او چیزی مثل اینه راه های خودتون رو ملاحظه کنید به راه های خودتون فکر کنید بر اساس اولویت هاتون فکر کنید که چی کار دارید میکنید حجای میگه بیایید به زمان شما و زمان خدا فکر کنید شما میگید زمان ساختن خانه خدا فرا نرسیده این یکی از عذرهای ناموجهی بود که مردم مکررا بیان میکردند الان زمان درستش نیست زمان چیز جالبیه. مردم در مورد زمان عبارتی رو به کار می بردند که منظورشون واقعا اون نبود. تا حالا شنیدید که کسی میگه برای اون وقت ندارم؟ وقتی یک شبان از یک روستایی میخواد که جز مشایخ باشه و یا مسئولیتی در کلیسا به عهده بگیره، او اغلب میشنوه که شبان من وقت ندارم. این پاسخ نشون میده که وقتی صحبت از زمان هست، بعضی از مردم ظاهراً به اندازه دیگران وقت ندارن. در واقع زمان یکی از چیزهایی است که در زندگی ما منصفانه تقسیم شده. همه ما از یک مقدار زمان برخوردار هستیم. 24 ساعت در روز, 168 ساعت در هفته, 8,760 ساعت در سال. همه ما در واقع به یک اندازه زمان داریم. چیزی که در واقع اون روستایی به اون شبان میگه اینه من اونقدر که باید به این بها نمیدم که براش زمان بذارم. این چیزیه که واقعا منظورش هست. خیلی صادقانه هست و درستش اینه که بگیم به خاطر هدف اولویت هام به خاطر اولویت هام نمیتونم برای اون وقت بذارم چون اونقدر برای مرزش نداره که براش وقت بذارم. اولین معزه در این زمینه بود. همون موضوعی که ما در قرن 21 کم بهش موضوع اولویت ها میگیم. سالها پیش با مردی چینی به نام دکتر لیلاندون ملاقات کردم که چیزهایی درباره به من یاد داد. دکتر وونگ قانونی در مورد وقت دعای خصوصی خودش داشت. اون قانون ساده این بود: قبل از کتاب مقدس، سبحانه نمیخورد. وقتی با دکتر وونگ ملاقات میکنید، بلافاصله متوجه میشید که او کسیه که هر روز سبحانه میخوره. او یک چینی بود که تغذیه درستی داشت، اما به هر حال اولویتش این بود: من سبحانه نخواهم خورد مگر اینکه قبلا کتاب مقدسم رو بخونم. وقتی او در مورد علبیت ها صحبت می کرد می گفت برای خواندن کلام خدا وقت ندارید شما هر روز برای خوردن وقت دارید آیا اینطور نیست ؟ دکتر وونگ بعد از اینکه در مورد قانون ساادش درباره وقت دعای شخصی صحبت میکنه مثل حجی اشاره میکنه که ما برای چیزهایی که می خواهیم وقت پیدا میکنیم مثل سه وعده در روز غذا خوردن وقتی ما میگیم برای خواندن کلام وقت نداریم در واقع منظورمون اینه. اونقدر برای کلام خدا ارزش قائل نیستیم که براش وقت بذاریم. در زمان هجی کار خدا بازسازی معبد سلیمان بود. قوم یهودا وقتی شروع به بازسازی معبد کردن مورد آزار قرار گرفتند. پس به مدت پونزده سال معبد رو ندیده گرفتند و به ساختن خانه های خودشون مشغول شدند. به این دلیل حجعی در اولین معزش قوم یهودا رو به چالش میکشه تا بر اولویت هاشون تمرکز کنن. بیایید در مورد وقت شما و وقت خدا فکر کنید بیایید به خانه شما و خانه خدا فکر کنیم شما برای خانه های خودتون وقت دارید اما برای خانه خدا وقت ندارید بیایید به کار شما و کار خدا فکر کنیم چیزی که شما دارید میگید در واقع اینه که برای کار خودتون وقت دارید اما برای کار خدا وقت ندارید پس بیایید به راههای شما و به راههای خدا فکر کنیم در اولین معزش حجه اینطور موعظه می کرد. پس کلام خداوند به واسطه حجه نبی نازل شده گفت آیا وقت شماست که در خانه‌های مسقف خود ساکن شوید و این خانه ویران بماند پس حال یهو و سبایوت چنین میگوید دل خود را به راه‌های خیش مشغول سازید بسیار کاشتهید و اندک حاصل می‌کنید می‌خورید اما سیر نمی شوید، می می‌نوشید لکن سیراب نمی گردید. می می‌پوشید اما گرم نمی شوید و وانکه مزد می‌گیرد مزد خیش را در کیسه سوراخدار می‌گذارد پس یهوه سبایوت چنین میگوید دل خود را به راههای خود مشغول سازید به کوه برآمده و چوب آورده خانه را بنان مایید و خداوند میگوید از آن راضی شده جلال خواهم یافت منتظر بسیار بودید و اینک کم شد و چون آن را به خانه آوردید من بر آن دمیدم یهوه سبایوت میپرسد که سبب این چیست سبب اینه که خانه من خراب میماند و هر کدام از شما به خانه خیش میشتابید تا به طور خلاصه حجع میگه های خودتون و راه های خدا رو ملاحظه کنید. پیام حجع کلامیه از جانب خدا. پس حال یهوه سبایوت چنین میگوید دل خود را به راه های خیش مشغول سازید. حالا این الزاما به این معنی نبود که اونها قومی فقیر بودند. حجع میگفت اونها مقدار زیادی خوراک و نوشیدنی دارند اما هرگز احساس سیری یا موفقیت نمی‌کنند. اگرچه لباس داشتند اما واقعا هرگز گرم نمی‌شدند. اونها هیچ رضایتی نداشتند و خدا به اونها نارضایتی الهی داده بود. پیغام حجه‌ای که بسیار تاثیرگذار بود این بود: راه های خودتون رو ملاحظه کنید تا بتونید توبه کنید. معنی کلمه توبه یعنی دوباره فکر کردن. در حقیقت وقتی حجه‌ای میگه های خودتون رو ملاحظه کنید، منظورش این بود که به دقت های خودتون رو بررسی کنید. دوباره به اولویتاتون نگاه کنید. این چیزی بود که در واقع حجه‌ای میگفت. کار من رو در اولویت قرار بدید، خانه من و اول بسازید، بعد خانه خودتون رو بسازید و من با شما خواهم بود و برکتتان خواهم داد، این اساس پیغام اولین مععزه هجای بود. حجی باید واعز بزرگی بوده باشه. ما می بینیم که وقتی حجی اولین مععزه رو میکنه خدا روح فرماندار و بعد روح کاهن اعظم رو بعد تمامی باقی مانده قوم رو به حرکت در میاره، تا اینکه اونها از حجی اطاعت بکنن مردم به کوه ها رفتند، تخته و تمامی مصالحی که نیاز داشتند آوردند و کار بازسازی معبد رو که 15 سال تعطیل شده بود از سر گرفتند. وقتی اونها این کار را کردند، حجه دومین بخش از اولین معجزه اش رو کرد. بعضی ها این رو به دو معجزه تقسیم می کنند، اما در واقع اون یک معجزه هست. به محض اینکه اونها کار بازسازی معبد رو شروع کردند، حجه کلام خدا رو برای اونها بیان کرد. خداوند میگوید: اینک من با شما هستم. و به شما برکت می‌دهم چون که اولویت هاتون رو اصلاح کردید و من را در اولویت قرار دادید معزه بالای کوه هم همون پیغام رو میده وقتی نخست در پی پادشاهی خدا و آن چیزی که خدا نشون میده درسته باشید بعد از اون تمام چیزهایی رو که نیاز دارید به شما خواهد داد همونطور که بارها و بارها در عهد قدیم دیدیم وقتی که اولویت های قوم خدا درست نبود استراتژی خدا این بود که خدا پروسه رشد رو متوقف می کرد. باران قطع می خدا رشد رو متوقف می کرد و قحطی میفرستاد. قحتی یکی از تدابیر مورد علاقه خدا برای به در آوردن قوم خودش هست خدا توسط انبیاش قوم یهودا و وادار به سجده میکنه بعد او میگه مرا در اولویت قرار بدید و من به شما برکت خواهم داد اولین باری که این معظر رو در کتاب حجی خوندم هرگز فراموش نمیکنم اوایل شبانی من بوعید داشتم کلیسای راه بندازم. جمعیت ما خیلی کم بود و سعی داشتیم که اولین ساختمونمون رو با ایمان بنا کنیم. منظورم از با ایمان اینه که من معزه می کردم تا اینکه مقداری پول رسید و بعد ما شروع کردیم به کندن زیربنا و ریختن فونداسیون. بعد موعظه کردم تا اینکه پول بیشتری اومد و تونستیم مقداری آهن بخریم. من به موعظه ها ادامه می دادم تا اینکه پولمون زیاد شد و کارهای دیگری کردیم. خب به جای رسیدیم که باید سقف زدیم. و پول کافی برای این کار نداشتیم. گفته شده بود که اگر باران بیاد ساختمون خراب میشه. یک روز شنبه بود که این رو به ما گفتند. وقتی روز بعد یک شنبه مردم جمع شدند، من از اولین معزه حجی معیزه کردم. من اینطور گفتم آیا درسته که شما در خانه های خودتون زندگی بکنید که سقف داره در حالی که خانه خدا سقف نداره؟ من درست مثل حجی معیزه کردم. اون روز صبح سه هزار دلار جمع شد. درست همون مقدار که برای پوشش کلیسا نیاز داشتیم. این همینطور درسی در مورد اولویت ها بود. یک روز شنبه بود که ما تصمیم گرفتیم برای خدمتی جهانی در سازمان جهانی از مردم درخواست پول بکنیم. این پول به بیرون از کلیسا میرفت و هیچ نفعی برای کلیسای ما نداشت. من وسوسه شدم که این کار رو به مدت یک سال به تأخیر بندازم. اما بعد از کشمکش زیاد، در دعای شب شنبه من و مشایخ کلیسا تصمیم گرفتیم که اولویت رو به درخواست اون ها بدیم و همین کار رو هم کردیم بعد از اینکه مردم تعهدشون رو نشون دادن و اون مبلغ جمع شد بعد از اون از کتاب حجه موعظه کردم و گفتم خانه خدا سقف نداره بیایید برای خانه خدا سقف بسازیم ما از مردم برای خدمت درخواست کردیم و مقدار پولی رو که برای سقف نیاز داشتیم به دست آوردیم این در واقع چیزی بود که حجه موعظه می‌کرد اولین معزه او موعظهای در مورد اوولیت و در مورد ایمان بود حجائی موعظه می کرد که ایمان بر اوولیت های شما متمرکزه سه چهارم تعالیم عیسی در اناجیل در مورد موضوع مباشرت هست البته این بدیم معنی نیست که سه چهارم معزه های ایسا در عهد جدید در مورد پول است مباشرت چیزی فراتر از پول است پولاس گفته که خادمین مباشرین کار خدا هستند این یعنی کار خدا به ما شبانان و معلمین سپرده شده و ما مباشرینی هستیم که کار خدا را با مردم در میون میذاریم. شما در مورد زمانی که دارید مباشر هستی در مورد سلامتی و قوتی که خدا به شما میده مباشر هستی در مورد تمام عطایای طبیعی و روحانی که خدا به شما میده مباشر هستی شما در مورد پولی که خدا بهتون میده مباشر هستی کلمه مباشر که عیسی در لوقا 16 به کار می‌بره مفهومی از تمام چیزهایی که بهش اشاره کرده به ما میده پول، زمان، انرژی، عطایا سلامتی، قدرت و تمامی چیزهایی که مال ما نیستن اونها مال خدا هستند ما در واقع مدیر این چیزها هستیم روزی ما خواهیم شنید که کسی میگه حالا تو دیگه مباشر نیستی بیا و حساب خودت رو پس بده وقتی عیسی اون تعلیم بزرگ رو در لوقا 16 به ما میده در واقع کاربرد برد حیرت انگیزی به ما عیسی میگه اگر شما با بی ثروت خودتون رو اداره کنید اگر پول خودتون رو با وفاداری اداره نکنید خدا ثروت حقیقی رو به شما نخواهد سپرد اگر در چیزهای مادی و در اندک امین نباشید خدا شما رو به لحاظ روحانی برکت نمیده این تعلیم حیرت به این معنی که ما دوچار سوء تغذیه روحانی شدیم این خارق العاده است وقتی حجی میگه خدا قحطی برای انسان و حاصل دست اونها فراخونده دست کشیده و تمامی چراغها خاموش شدن؟ آیا تا حالا یک خوشسالی روحانی رو تجربه کردید آیا تا حالا جایی بودید که احساس کردید موزیک از نباختن ایستاده و تمامی چراغها خاموش شدند دکتر ای دبلیو تازر گفته بعضی روزها وقتی بیدار میشید موزیک در حال نواختن ماشی باشکوه هست و شما با اون آهنگ رژه میرید اما بعضی روزها بیدار میشید و موزیک در حال نواختن نیست به هر حال شما باید رژه برید وقتی نمیتونید با دیدن یا با شنیدن یا با احساس رژه برید با ایمان رژه میرید وقتی به جایی میرسید که موزیک از نواختن ایستاده وقتی چراغا خاموشه و احساس خوشکسالی میکنید به معجزه حجی نیاز دارید شنیدم که رهبران بزرگ روحانی میگن من خیلی تشنه من با خشکسالی مواجهم همون مردمان خداشناس هم خشکسالی رو دارن وقتی شما با خشکسالی مواجهید به راههای خودتون نظری بیاندازید. یک حسابرسی روحانی از خودتون بکنید عیسی این رو کاملا تصریح کرده یکی از دلایل خوش‌سالی روحانی اینه شما تمرکز بر اولویتهاتون هاتون رو فراموش کردید و خدا در اولویت نیست شما در اولویت هستید کار خدا در اولویت نیست کار شما در اولویته خانه خدا در اولویت نیست خانه شما در اولویته زمان خدا در اولویت نیست زمان شما در اولویته وقتی اینطور میشه خدا انقدر شما رو دوست داره که نمیذاره در زعفهای روحانی خودتون قلب بزنید بنابراین او خوش سالی رو بر شما و بر کارهای شما فرا میخونه به عنوان یک شبان من همیشه در کلیسایی که خدمت میکنم همیشه این رو مد نظر دارم که هرگز ندونم چه کسی چقدر چه میده یک سال صندوق داری داشتم که سعی داشت من دفاتر رو ببینم تا متوجه بشم که چه کسی چقدر میده. من از این کار امتناه کردم. اون نتونست من رو به این کار متقاعد کنه. من به تعالیم عیسی ایمان داشتم. نگذارید دست چپتان از کاری که دست راستتان می آگاه شود. معنیش این بود که این به من ربطی نداره که مردم چقدر می هدیه دادن برای خداست و او باید بدونه. من نمیخواستم که در مورد دادن و یا ندادن اعضایم بدونم چون که نمی نسبت به کسانی که بیشتر کرده باشم. به هر حال این صندوقدار احساس می کرد که من به عنوان یک شبان باید بدونم. او تمام سعیش رو می کرد که منو قانع کنه. او گفت عیسی وقتی مردم در معبد پول به صندوق مینداختن اونجا ایستاده بود. عیسی گفت که اون بیوهزن بیش از بقیه داد. من گفتم اما من عیسی نیستم. من همیشه توی دفترم به مردمی که مشکل دارن مشورت میدم. کار من مشورت دادن به مردم صندوقدار گفت بذار اینطوری بگیم. کسانی هستند که همیشه با مشکلاتی به دفتر میان. اگه به دفتر نگاه کنی میبینی که چرا اونها این همه مشکل توی زندگیشون دارن. اونها پولی به این کلیسا نمیدن و به این دلیل این همه مشکل دارن. خدا یک قحتی در زندگی اونها آورده و تو باید به اونها مشورت بدی. چیزی که باید به اونها مشورت بدی در مورد مباشرت هست تا جایی که به مسئله مباشرت مربوط میشه شاید اگه اونها از اصول خدا پیروی کنن خدا بهشون برکت بده. وقتی من به عنوان شبان خدمتم رو شروع کردم چیزهای نامفهوم زیادی میگفتم که دیگه نمیگم. من اغلب میگفتم هرگز در مورد پول موعظه نخواهم کرد. من در مورد خانواده شنیده بودم که مدت بود سعی میکردند پدرشون رو به کلیسا بیارن. و وقتی پدر به کلیسا اومد، کشیش در مورد پول موعظه میکرد. پدر وقتی خونه اومد گفت: میبینید این تنها چیزیه که اونجا بود. این بود که او پول منو میخواست. من دیگه اونجا نمیرم. من داستانهای زیادی در این مورد شنیدم و از این رو گفتم دیگه در مورد پول معایزه نخواهم کرد. اما میدونید به عنوان یک شبان یاد گرفتم که شما به عنوان یک شبان مسئول سلامت گلتون هستید. یکی از چیزهایی که واقعا سلامت روحانی اونها رو تحت تأثیر قرار میده و وفاداری اونها در مباشرت هست. حالا اگر این واقعیت داره، اگر اونها وقتی در مباشرت امین هستند خدا به اونها برکت روحانی میده و اگر در مباشرتشون امین نیستن خدا قهطی روحانی رو بر زندگی های اونها می فرسته؟ اگر شما مسئول سلامت روحانی اونها هستید چطور میتونید در مورد مباشرت موعظه نکنید؟ امکان نداره من هر سال در ماه دسامبر در مورد مباشرت موعظه می کنم هر یک شنبه ماه دسامبر در مورد مباشرت موعظه می کنم و بعد در کریسمس ما در روز تولد عیسی مسیح به او هدایایی می دیم و در تمامی ماه دسامبر بر مباشرت تأکید می کنیم. آیا کاربرد شخصی و عملی معیزه حجه رو ملاحظه کردید؟ کی و یا چی در زندگی شما اولویت داره؟ های شما چی هستند؟ مهمترین چیزها در زندگی شما بر اساس اهمیتشون چی هستند؟ اگر میخواد جواب اون سوالات رو بدونید، از خودتون سوالاتی مانند این که هجعی پرسیده بپرسید. وقتتون رو چطور صرف میکنید؟ پولتون رو چطور خرج میکنید؟ انرژی و قوّتتون رو چطور صرف میکنید؟ چطور بر دیگران تأثیر می‌گذارید؟ از عطایایی که دارید چطور استفاده میکنید؟ عطایای روحانی و طبیعی. پاسخ به این سوالات به شما نشون میده که های شما چی هستند. وقتی فهمیدید که هدف و اولویتاتون چی هستند، اون وقت می‌فهمید که اگر خدا اوله، هر چیزی رو که نیاز دارید به شما خواهد داد. او شما را با هر چیزی که نیاز دارید برکت خواهد داد. عیسی در متی 6:33 به ما گفته: نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید آنگاه همه آنها نیز به شما عطا خواهد شد مثل چیزهایی که می‌خورید یا می‌پوشید اما اگر شما در اولویت هستید و خدا را بعد از خودتون قرار دادید اگر خدا را در صندلی پشتی قرار دادید اون وقت خدا یک قحتی به زندگی شما و حاصل کار شما می‌فرسته این پیغام حجه نبی در اولین موعظه است در اینجا حجه موعظه را متوقف می‌کنه و شروع می‌کنه در مورد صحبت کردن از زندگی های شخصی اونا حجه اینطور میگه. آیا وقت ندارید خانه خدا رو بنا کنید؟ خب شما برای ساختن خانه های خودتون وقت دارید اینطور نیست؟ بیایید به وقت شما و وقت خدا فکر کنید. برای هر کاری که میخواد بکنید وقت دارید اما برای کاری که خدا میخواد بکنید وقت ندارید. پیام حجه در اولین معزش چیزی که در سرتاسر سر کتاب مقدس بر اون تمرکز شده و اون پیغام میتونه در دو کلمه خلاصه بشه اول خدا وقت جلسه امروزمون به پایان رسیده اما در جلسه بعدی میخوام بیشتر در مورد معزه اول حجه براتون صحبت کنم سعی کنید در جلسه بعد همراه ما باشید چون پیغام اولین معزه حجه موضوعی هست که خدا از پیدایش تا مکاشفه بر اون تاکید کرده اون باید حقیقتی باشه که خدا میدونه همه ما بهش نیاز داریم وگرنه این همه بر اون تاکید نمیکرد. چرا عزیز من از شما دعوت میکنم اگر تا اجازه ندادید خدا در زندگی شما اول باشه امروز این کار رو بکنید. خدای قادر مطلق آسمانها و زمین نه تنها لایق که اول باشه بلکه از ما میخواد که با ایمان او رو در صدر زندگیهامون قرار بدیم. به حضور او بیاییم و بگیم خداام میخوام تو رو در صدر زندگیم قرار بدم. خدای قادر مطلق آسمانها و زمین نه تنها لایقه که اول باشه، بلکه از ما میخواد که با ایمان او رو در صدر زندگیهامون قرار بدیم به حضور او بیاییم و بگیم خدایا میخوام تو رو در صدر زندگیم قرار بدم من خودخواه بودم و میخواستم که خودم رو در جایگاه نخوست قرار بدم پس به من کمک کن تا در قوت تو رشد کنم تا تو و پادشاهی تو رو در صدر زندگیم قرار بدم عزیزان کلام خدا به ما میگه که اظهار محبتی بیش از این وجود نداره که شخصی زندگی خودش رو برای دیگری فدا کنه خدا بدون خودخواهی زندگی خودش رو فدا کرد تا من و شما بتونیم حیات ابدی داشته باشیم او خودش نمونه بزرگی از محبت فروتنانه هست دعای اینه که شما اراده و امیال و زندگیتون رو به اون تسلیم کنید تا اینکه بتونید حیاتی رو که اون وعده داده به فراوانی تجربه کنین تا برنامه بعدی؟ امیدواریم که از این حیات به فراوانی لذت ببرید.